یکی از نویسندگان و روشنفکران معاصر ما که البته چهل و چند سالی است از دنیا رفته، او می نویسد که آیا علی ابن ابی طالب علیه السلام انسان مافوق است یا مافوق انسان است؟ یعنی مثل ما بشر منتها بالاترین فرد ماست در کمالات در اوصاف یا نه اصلا او مافوق بشره زابوها که دیگر و اهل دیار دیگر است ما ها به او برسیم فرقش این کلمه است اگر مافوق انسان باشه کسی از انسان های عادی نمیتواند به او برسد اگر انسان مافوق باشه یعنی فعلا بالاترین سطح دیگران هم میتونن به اونجا برسن راه بازه این عرایزی که من دیشب یه رو شروع کردم مای شیعه اگر کوتاه هم بیاییم تنزل هم بدین مطلب رو از جهات الهیه اهل هم صحبت نکنیم برای دنیا از علم غیبشون، از اسمتشون، از ولایت تکوینیشون همین جهات زمینی اربابانمون رو برای دنیا به رخ بکشیم باز هم برنده باز هم نمونه شد تاریخ بشر نداشته و نخواهد داشت. من دیشب از کردم امروز زیاد پیدا میشه که این مملکت جوانان دلخور و برید از دین و مذهبی که وقتی ازش میپرسم خب بالاخره به چی معتقدی دینت چیه؟ یاده خان دینم انسانیته خب همیه کلمه رم بپذیریم و تو انسانیت انسانیتم الگوی شما ندارید بالاتر از همیر المومنی. تو انسانیتم اولگوی بالاتر از سید و ندارید بالاترین جایی که میشه انسانیت یک انسان رو نشان داد در مقابل دشمنش چیجوری کار میکنه و اونجا دیگه اوج خطر اوج غیرت اوج مقابل است آدم هرچی هم آدم خوبی باشه میگیم با زنش با بچهش با همسایهش با فامیلش با قوم و در مقابل دشمن خیلی دیگه میگن جایزه برخی کارا برخی تندیا بر دشمن دیگه خیلی مراعاتش نکن در جنگ جمل زبیر خب بعد از نصیحت آقا امیر المومین علیه السلام کناره گرفت دیگه جنگ ها کرد از لشکر فاصله گرفت و رفت بعد هم یکی پیدا شد به نام ابن جرموز رفت غفلتن از پشت سر سرش را از بدنش جدا کرد و خوشحال آورد پیش امیرالمؤمنین که زبیر رو کشتم شمشیرشم آورد برای امیرالمؤمنین. حضرت آه کشیدن حریف داری شمشیر زبیر رو این نگاهی کرد آهی کشید فرمود سیفون تال ما کشف الکرب ان وجه رسول الله ولو دشمن منه ولو این همه برای ما مشکل درست کرد اما من عویم از انصاف نمی گذرم دیروز زبیر را انکار نمی کنم این شمشیر زبیر چقدر گرد غم و غصه از چهره پیغمبر زدوده بود خیلی آدم خوبی بود خیلی به پیغمبر خدمت کرده بود اینو شما کجا پیدا میکنید که در مقابل تاریخ زندگی دشمنش انصاف رو رعایت بکنی من ندیدم دشمن خونی که زهر لکای با هم اختلافات خانوادگی هم داریم ها سر بچه دعوامون شده با همسایه بیچاره تو مسجد ایستاده نماز می کنه داره ریا او بابا بچهت با بچهش دوا شده دیگه چرا از انصاف میگذری؟ چرا نمازشو قبول نده گاهی برعکسه یکی رو دوست داریم با ما رفیق جنجونیه روز خوره اما این نه میدهش زخم معده داره به خاطر زخم معده داره روزتون انصاف در مقابل دشمن من ندیدم تو عالم سیاست کافی از جناحی هم دیگه نباشن از حزب هم دیگه نباشن طرف رو بیچاره میکنم. خاک مذلت مینشانه این انسانیت شما این دفاع شما از حقوق بشر میرسد به جایی که شما دیگه چارهای جز از جنگ با دشمن ندارید تاریخ اهل بیت سراغ نمی نمیدهد که جایی پیشقدم شده باشند برای جنگ خونریزی اینقدر برای جان انسان و خون انسان ارزش قائله. تو فقه ما تو احکام ما هم مسئله دم و مسئله خون آقا بالاترین حرمت رو داری بیشترین سخگیری رو میکنه فکرشیه که کسی اعدام نشه. هر جور دلت میخواد اینور اونور بپیچون ور, اون ور بپی توجیهش بکن که کار به اثبات جرم نرسه که طرف رو ببرم بالای دار هدره الهدود به شبهات اصل فقهیه حد الهی برداشته میشه با کوچکترین شبهه کوچکترین شک و ای کردی ولکن نباید خونه کسی ریخته بشه اینقدر شیعه از اهل بیت یاد گرفته تو جنگ جمل باز دو لشکر مقابل هم استادن لشکر تلحوز و لشکر امیر علیه السلام خب میدونید تلحوز و بیر چه کرده بودن بسر رو قارت کرده بودن بیت المال بسر رو پوست سر و صورت شکنده بودن آتش زده بودن امیرالمومنین مجبور شده بود از مدینه تا بسر لشکر بیاره اما رسیدی آقا اونجا نه جای نمیخوام برید نصیحت کنید اینا رو برید دست از جنگ بردارن اگر پیشنهاد اول ام آدم بشید تسلیم بشید بیاید با حق باشید این هم نمیپذیرید جنگ نکنید راضی به خون بشر ریخته بشه من نیستم شما هم نباشید پی که اول سفیر آقا پرستاد جلوی این لشکر و بیر پند و نصیحت و اندرز کشتنش آقا فرمود بازم میفرستم کشتنش نفر سه بو هم میفرستم چهارم میفرستم پنجم هم میفرستم جنگ شروع نشه میارزه اینا آدمن، اینا گوزفن نیستن، تا نه نفر رو فرستاد آقا هر نه نفر رو کشتن لشکر امیرالمؤمنین اعتراض خودشون بلند شد علی جان تا چه مدارا میکنی؟ تا چه کوتاه میای از پاسگاه الهی خدایا دیگه حجت بر من تمام شد دیگه چاره جز جنگیدن نداره و فرزندش شهیدان همین همینطور تو حادثه کربلا شما نگاه بکنید تو حادثه کربلا تو لشکر دشمن یه نفر وجود داره این آدم اگر سر به نیست بشه جنگ اتفاق نمی آفته. بقیه رو میشه باشون کنار اومد با اون شمر ابن تمام آتش بیار معرکه جنگ کربلا شمر ابن زیل به قدری که ابن زیاد وقتی با او رو فرستاد به کربلا همراهش نامهی هم فرستاد برای امرسق و امرسد کوتاهی میکنی در جنگوک طالب ها حسین اگر شمر رسید میخوای کوتاهی کنی بهش دستور دادم فرماندهی رو از تو تحویل بگیره برو کنار حسین باید کشته بشه و شمر مصممه بر این امره وقتی نامه رو داد دید قدرت و فرماندهیش در خطره ملک در خطر اینجا گفت که نه نمیخوام تو فرمانده بشی خودم باقی میمانم خودم هم با حسین میجنگ همین شمر عصر تاسوعا آمدند برای صحبت و از کنم قضایه امان نامه اینا که نمیخوام واردش بشم تو تیرس لشکر سید بود یکی از اصحاب حالا جناب حبیب رو نوشتن جناب مسلم ابن عوصجر هم نوشتن جناب زهیر ابن قینم نوشتن یعنی یکی از اون بزرگان لشکر عبا رو کرد به آقا از کرد آقا همین الان اجازه بدی با تیر میزنم رو میکشم تو دسترس منه کشتنش الان برا من خیلی راحتی و شمر بمیره قصه تمامه قصه کربلا تمامه فرمود نه من نمیخوام شروع کننده جنگ من باشم شما اگه تحلیل بکنید همه یه قصه رو آقا اگر این بماند سرهاتون بالای نیزه میره بره آقا این اگر بماند دختراتون دستاشونو رو میبندن و اثارت میبرن ببرن آقا اگر این بماند تمام اونجور میبینی نه به هر قیمتی من انسانیت رو زیر پا نمیذارم من شروع کننده جنگ نیستم من قافل گیر نمی کشم شمارم. دنیا نمونه شو داری میتونید سراغ پیدا بکنید من گاهی به روز میخوام حرف بزنم ناچارم تمام دنیای غرب دنیای مدعی دموکراسی، دنیای مدعی حقوق بشر و همه کشورهاشو با هم جمع کنید تمام پشت پرده اینه که حاضر نیستن سربتن رقیبشون باش از هر تاکتیکی که بروز پیدا نکنه رقیب رو از میدان بدر کنی براتون باز مثال بزنم جنگ سفینه دو هیچده ما هم طول کشید قضایایی داره این جنگ سفین من تقاضام اینه اگر میخواید اربابتون، آقاتون امیر المومن علیه السلام رو منهای علم غیب و اعجاز و ولایت تکوینی و و اینا نه چهره زمینیش رو به مردمان معرفی کنید که شما دنیا نموهش رو نداره تاریخ جنگ سفین رو تاریخ جنگ جمل رو تاریخ جنگ نهروان رو بذارید جلوی دنیا از اون بیست و پنج اگر بعضیا بگن بالا چشم ستای اولی ابرو بود دیگه بالا چشم ماویه که ابرو نیست که آه؟ بالا چشم تلوزو بود که دیگه قرار نیست عبروی باشه همین ستا جنگ حضرت رو به دنیا معروفه چه کرد آقا در مقابل اون دشمن روحیهش انسانیتش رایت او به بشرش یه وقت نیمه شب آمدن سربازا تو خیمه امیر المامی آقا دو نفر ناشناس صورتشون هم پوشوندن درخواست ملاقات با شما رو دارن فرمود بذارید بیاد سری بیاریدشون داخل همتونم برید کسی داخل خیمه نماند دوروبر خیمه هم کسی گوش وای نیسته ما رو رها کنید و برید کنار فاصله بگیر، یک ساعت دو ساعت طول کشید بعد آقا نگهبان ها رو فرا خاندن. گفتن از این دو نفر مراقبت می کنید مثل چشاتون تا جایی که از اردوگاه لشکر ما خارجشون بکنید در کمال سلامت و امنیت راهی اردوگاه اون طرف بکنید سالم ببرید این دستوره لشکر چش دوانه کردن برگشتن آقا اینا چیا بودن فرمود یکشون معاویه بود یکشون امراض ای. علی جان تو اگر اینجا معاویه رو اسیر میگرفتی میکشتی اینا که مخفیانه آمده بودن احدی تو دنیا خبردار نمیشد میگه نصف شب رفتم کشته شدن جنازهشونم پیدا نشد و میکردیم این کارو بعد من مجبورم توضیح بدم علی جان اگر این حرف منه اگر میشب معاویه رو اینجا میکشتی بنی اومیه ریشه حکومتشون کنده میشد دیگه نمیماندن هشتاد سال بعد حکومت کند دیگه یزیدی به وجود نمیآمد. دیگه مروانی حکومت نمی کرد دیگه عبدالملک مروانی ولید ابن عبد الملکی هشام ابن الملکی حکومت بنی اومیه نمیبود علی جان اینجا میکشتیش معلا حرفم اینه دقیقا حرفم اینه برای دنیای مدعی حقوق بشر برای دنیای مدعی دموکراسی با تمام کشورهای غربی که شما دیگه اوج آمال آرزوهای بعضی از خودیای ما شده متأسفانه میگید آقا شما واقعا بزرگانتون رجال مملکتیتون در مقابل رقیب مفتمت جانی بیفته تو چنگش که اگر بکشه اهدی هم خبردار نمیشه شما قدرت میگیرید رقیب زمین میخوره آزادش میکنید بره وله اهدی حتی خودشون هم میدونن که آزاد نمیکنه. دموکراسی شما اینه حقوق بشر شما اینه شما جوانهایشیه تو چرا دیگه خودباختهی غربی ها شدی من فقط دارم از جهت حقوق بشر صحبت میکنم آ. بعد حرفهای من همونو که میگم فهمیده بشه لطفا من میگم حقوق بشر الگوش امیر المؤمنینه من میگم مدعیان دموکراسی تو دنیا شیفته اینو نشی اونایی که دم از انسانیت میزنن حداقل بتونیم اینو معرفی کنیم بابا امرو رو علی جان چرا اسیرش نکردی و اسیرش کن ببر تو سیاه چال ده سال اونجا اهدی هم خبردار نشه اینکه مخفیانه آمده. اینکه صورت شو پوشون دلشگریان یعنی تو هم نمیشناسنش. نمیشد. نمیدونی چقدر به نفع اسلام میشد. کربلایی به وجود نمی آمد. علی جان. دیگه یزیدی. حکومت یزیدی. نه. من انسانیت و زیر پا نمیذارم. به هر قیمتی تمام بشه. ولو میدانم همین هم زینبم رو به اسارت می بره. من انسانیت رو زی پانه نیزرم فرستاد دو نفر رو لفتم آقامو سید و شهدا هم تو کربلا همین رفقا لحظه لحظه کربلا تا مت آدم شیعه میکنه اگر من آخوند عرضه داشته باشم بفهمم به مردمم راستشو بگم که آقای امام حسینو اینجوری به دنیا معرفی کنی لحظه لحظه کلمه به کلمه آقا حرکت قدم به قدم آقا انسان شیعه میکنه ندارن مثلشو به خدا ندارن دنیا تشنه انسانیت دنیا تشنه به قول خودشون حقوق بشر ماها نتونستیم ثابت کنیم امام حسین ماست اون که حقوق بشر رو در اوج نشان داد و اجرا کرد بشر بعد از اینم اوجشا بعد از اینم مکتبی به غیر از اومانیزم بالاتر نمیتونه بیاره در مقابل خدا و پیغمبر رو اهل وید که نمیخواد تسلیم بشو اوج اقلانیتشون همین اومانیست میدیگه من خیلی هم دوست ندارم بالا منبر امام حسین از این اسما بگم اما چون حرف گرفتاری بچه های خود ما این شده از در خانه امام حسین بریده رفته پسرم کجا ها جا من دینم انسانیته من مذهبم انسانیته برگردم انسانیتم در خانه یعنی در مومنی. اینجا چی دیدی برید دی از امیرالمومنین شب هشتم من با گرفتاری و مصیبت امشبم متناسب عرض بکنم آقا شما کدومتون تو جنگ نمیخواید پیروز بشید به هر قیمتی کشورها با هم میجنگند، دنبال یه ترفندی هم پیروز میدان بشن اربابان من و شما تو جنگم اینو نخواستن پیروزی هم به هر قیمتی نمیخوای. صد بار مرحوم شرط جفر شوشتری نویسد. این آقا و ارباب من و شما سید و گردن مردم کوفه حق آب داشت هم انسانیت رو بگم همون پشت پردر رو بگم که تا روز آشورا دیگه کسی حجت نداشته باشه یک بار نوشتن تو کوفه زمان حکومت امیر المومن علیه السلام قهطی آمد خشکسالی آمد بی آبی مردم گرفتار ریختن در خانه امیر یا یعنی فکری بکن. آقا میتونست خودش دعا بکنه نماز به خانه باران بیاد. فرمود حسین جان تو برو. میخوام به برکت دعای تو خدا بر این مردم آب بده اینا فردای آشورا بهانه نداشته باشن آب به روی تو بستن اینا تو آبم بدهکار کار تو باشن سید و شادا رفتن دعا کردن طلب باران کردن کوفر رو آب گرفت یه بار تو همین جنگ سفین بود که ارز کردم و طرف رودخانه لشکر معاویه اونور لشکر عمیل المامین علیه السلام این بیابان لمیزره خشک سفین تو شهر که نبود تو وسط بیابان بود فقط یه رودخانه رد میشد هر لشکری این آب رو در اختیار داشته باشه به روی طرف مقابل ببنده برنده قطعی جنگه علی نمیخوای برنده بشی روی دشمنی مثل معاویه کدوم کشور الان این کار رو طرف معاویه آب رو گرفت بستن به روی خوشحال که شکست علی و لشگریان علی قطعی اسباشون از تشنگی می می هم از تشنگی می, می ما بدون جنگ برندهیم حضرت مالکش دارو فرستاد مالک برو راه آب رو بگیر از اینا مالک حمله کرد آب رو گرفت آمدن آقا ما ببندی. ماهوی و امراض شکستشون قطعیه فرمود نه بذارید ماهوی آب بخوری بذارید لشکر ماهوی آب بخوری ما آب نمیبندی بار دوم اون حمله کردن گرفتم آقا یک فرد دیگر رو فرستاد آب رو پس گرفت آقا اینا دوبار بار بیهیایی کردن آرا رو بستن اجازه بدین دفعه ما هم ببندیم فرمود نه باس بار سوم معاوی راه آب رو فتح کرد و بس به روی سید این دفعه آقا امیرالمومنین المومن سید و رو فرستاد حسین جان دفعه سوم بد جوری راه آب رو بستن لشکر رو زیاد کردن محافظان رو زیاد کردن قلقای قبلی هم فهمیدن این دفعه کارکار تویه از دست مالکم بر نمیاد سید و شهده رو حمله کرد دوتا نکته میخوام اعز کنم. راه آب رو باز کرد. برای کی؟ برای کوفیان. کوفیان بیوفا. لشکریم برای همه کوفیان دیگه. راه رو باز کردم آشورا تشن من میکشید آن. نداشته باشید در خانه. آمدن آقا این دفعه راه آب رو برای معاویه ببندیم. فرمود نه. فرق ما با معاویه همینه دیشب از کردیم از زبان اون شاعر عرب و حسبک ومو حازت تفاوت بیننا و کل عناین بالذی فیه یرشهو اصلا فرق ما با اونا تو همینه شنیدم او بجنگن درون معاویه بست به شاه ولایت چرا که بود خسی خدا رحمت کند شهریارو این اشعارش نجاتش داد شهریار آدم منحرفی بود من یه چیز ادبی هم بگم چون برخی از جوانامون مطالب براشون اثر گذاره این فیلمی هم که تو تلویزیون از شهریار دیدید فقط بدیهاش نشون دادن شهریار خوب رو نشون ندادن برای شما شهریار توبه کرد کلیپش موجوده تلویزیونم پخش کرد پاس سال خودم خودمم دیدم نقل قول نیست گفت پنج تا بت داشتم از هر پنج تاش دست کشیدم شکستم توبه کردم یکیش موسیقی بود میگه موسیقی بت من بود شکستم گذاشتم کنار یکی درویشیگری تصوف بود من صوفی بودم من شهریار بتم بود شکستم توبه کردم گذاشتم کنار یکی وافور بود، دریات میکشیدم، معتاد بودم، توبه کردم، شکستم، گذاشتم کناد. دوتای دیگه هم بماند. یکی عشق زمینی بود، ناچارم میکنید بگم. شهریار تو این فیلمی که نشون داده، عشق زمینی درش موج میزه. این خوب نیست جوانا. بعد نگن شهریار آدم مشهوری بوده، اینم عشق زمینی، از عشق زمینی هم، میشود به عشق آسمانی رسید پس الگوی ما شهریاریم که من غلط کردم یه اشعار من اکثرش دوران غلط کردنمه آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا شکستم این بوتو گذاشتم کنار توبه کردم کی شعر که میخوام در وصف امیرالمؤمنین بگم مال همین قضیه خدا رحمت کنه مال شهریار شنیدم آب به درون معاویه بست به روی شاه ولایت چرا که بود خسی او خست بود آب و بست علی به حمله گرفت آبو باز کرد سبیل چرا چرا که او کس هر بی کس است و دادرسی فضول گفت که ارفاق تا بدین حد بس که بی دشمن زهد گذشت بسی علی دیگه ارفاق بسی دیگه سه بار آب رو گرفتم بستم بذار ما ببندیم چی فرمود جواب داد که ما جنگ بهر آن داریم که نان و آب نبندد کسی به روی کسی ما تو دنیا نان برای همه میخوایم. رفاه و برای همه میخوایم. آب رو برای همه بشریت میخوایم. آسایشو برای همه بشریت میخواییم کدوم کشور الان عمل میکنه برای منافع خودشون میگن حاضریم یعنی رایج جایز عیبی هم نداره منافع ملی ما تعمیم بشه به بقیه به ماچ این حرف و شعار همه کشور هاست. آقای ما اینجوری نیست جواب داد که ما جنگ بهران داریم که نان و آب نبندد کسی به روی کسی رو نان نبندید، آب نبندید غلام همت آن قهرمان کون و مکان که بیرزای الهی نمیزند نفسی شب هشتمه روزمو بخوانم اون بار سومی که سید الشهدا حق آب داشت برای مردم کوفه تو منزل زوحسن بود. اما لحظه ای که لشکر و هر محاصرشو کردن. دید همه تشنم فرمود لشکر هور رو سیراب کنید. هم سیراب کنید. شما ها امام حسینی هستید. میفهمید من چی دارم میگم. آقا اینا رو سیراب کنیم فردا زن و بچه تو رو اسیر کنن. بکنه آقای اسبا رو که داریم آب میدیم فردا همین اسبا نهله تازه میدنن رو بدن تو میتازن پتازن من اسب رو بدون آب نمیذارم مکتب ما این نیست ای قربان تو حسین کجا دنیا نمونه شدن کجا میتونه حقوق بشری در این اوج رو نشون بده کجا انسانیت میتونه شبیه تو رو نشون بده ابن تعانه میگه آخرین نفر از لشکر هور من رسیدم آقا دید تا من تشنم فرمود انخر راویه ما کوفی بودیم راویه تو زبان کوفی ما به مشک آب میگفتن نفهمیدم حضرت فرمود شطور رو بخوابون حضرت به لحن حجازی حرف میزدن عرب حجازی شطور رو بخوابون شطور مشک آب و آب بخور شطر و خابون یه مشک برداشتم دستام می لرزید. نتونستم سر مشک گرد دارم آب می و نمیتونستم بخورم خود آقا اومد با دستان خودش سیرابم کرد دشمن رو با دست خود سیراب میکنی آب خود با دشمنان تشن قسمت میکند ایش آرم از شهریار وقتی آدم حسینی باشه چه الفاظی بر زبان خوش جاری میشه آب خود با دشمنان تشنه قسمت می کند عزت و آزادگی بین تا کجا دارد حسین دشمنش هم آب میبندد به روی اهل بیت داوری بین با چه قوم بی حیا دارد حسین آقا با این قوم بی حیا شما اینجوری رفتار کردی اینجام کوفیان رو سیراب کرد اما امشب شب قهتی آب تو خیمه های عبا عبدالله الحسین از شب هشتم دیگه آب قهت خیمه های حسین این همه بهشون محبت کردی کار رو به جای رساندن که باید تصمیم بگیری از همه دار و بگذری میگن اوج ایثار اینم یه درس درس انسانیت اوج ایثار در راه هدف اونه که از اون چیزی که بیشتر از همه دوست داری بگذری باید اولین شهیدت از بنی هاشم علی اکبرت باشه حاضری تا آمد اجازه میدان بگیره آقا یک کلمه اصرار نکرد علی تو دیشب از کردم وقتی قاسم ابن الحسن آمد آقا اجازه نمیداد تا جایی که غش کردن چه علا یبکیان حتی غشی علیهما. اما تا علی اکبر آمد و برو علی جان اما چه رفتنی و یمشی علی یون والحسین من القفا ای خودش رو میکشون سر پسرش تسیل و دمول این من به صفحتی اشکاش جاری بود یه دست به محاسن یه دستم سمت آسمان علی یا علی بین العدا تركتني و بادرت فل جنات نهول احبتی تو میان این حملش کرد تنها گذاشتی خودت داری میری سمت جد پیغمب علی ازالاقی تجد که قل له، آیا جد ناصر ناقتی لر خدمت جده پیغمبر که رسیدی بگو بابا جان اسیر رعیت شدیم قتیل رعیت شدیم اینا از طرف خدا رعیت ما بودن ما مولا بودیم تو قدیر اینا با ما بیعت کرده بودن ما ارباب باشیم اینا رعیت باشند، جمع شدن ما رو کشتن اما مرحوم شیخ جفر شوشتری می نویسد رفتن علی یکبر سه بار حسین رو به حال مرگ انداخت یکی اون لحظه‌ای که از بابا اجازه گرفت رفت سمت امه ها رفت سمت خواهرا آقام داره نگاه میکنه دید گلگلهی به پاشا جلوی خیمه مخدرات رقعیه نمیتونه از علی اکبر دست برداره داداش تو نرو زینب نمیتونه از برادر زاده علی جان تو نرو علی ارهم گربتنا علی ارهم قلتن علی به بی ما رحم کن علی تو بری دیگه بابات کس نداره علی تو بری دیگه اماهات و دستاشون رو میبندن از ما قطعیه آقا رنگش متقیر شد به حال مرگ گفتا بار دومم زمانی بود که علی اکبر رفت جنگید برگشت به خیمه ابتا الاتشو قد قتلنی و سقلال قد اجهدنی بابا امیدی به آب هست بابا با سی هزار لشکر یک تنه دارم می جنگم ظاهر عبارت اینه سنگینی سلاح جنگی سنگینی آهن منو بیچاره کرده مرحوم علامه مامگانی نویسد. هاشا علی اکبر معناش این باشه حرفش علی اکبر مرد جنگی بود زره منو بیچاره کرده سنگینی منظورش این نبود منظورش این بود بابا سی هزار شمشیر آهن جلوم واستاده کار آسان نیست بابا آبی بده قوتی بگیرم برگردم با دشمنان تو بابام یک حرکتی کرد تا قیامت براش گریه کنی زبان خشک و گذاشت و دهان علی اکبر یعنی بابات هم عین تو لب خشکیده است بابات هم عین تو ادشان است پسرم بازیام یه استفاده زوجی کردم گفتن معمولا تو عرفم هم همین زبان حالا بابا موقع رفتن و بدای پسر جلوی زنها مقدرات روش نمیشه صورت با پسر رو ببوسه لبهای و پسر رو ببوسه اما تو بار دوم به این بحانه که علی خواست حسین لبهاشو بذاره روی لبهای علی اکبر این لحظه هم حسینو با حال مرگ انداخ. یک وقت همون بود که شکافتن پیشانه علی اکبر و خون جاری شد علی افتاد رو مرکب خون رفت جلوی چشمان این اسب و گرفت اسبان جنگی آموزش دیده بودند تا احساس میکردن ساکبشون زخمی شده افتاده بر به لشکرگاه خودشون اما خون جلوی چشمان این مرکب رو گرفت اما لهو الامو از کره لعدا به جان که علی رو به پیشگاه به پدر برگرد بود میان لشکر میان لشکر دشمن یه عمری من نمیتونم بفهمم قطعه و اربن اربا یعنی چی پار پاره کردن قطعه قطعه هش کردن یعنی چی فقط اینقدر میتونم بفهمم جونا یه کنای علی اکبر خدا یک جرعه از مصیبت بابا را علی اکبرم بچشه مصیبت بابا کی لحظه ای که افتاده بود تو گودی قتلگاه دشمن دورش کرده بودن همه میزدن همه میزدن علی اکبرم افتاد وسط دشمن اعاته کردند همه شمجیر میزدن همه نیزه میزدن فقط یک کلمه صداش بلند شد ابتا علیک السلام سلام خدا حافظی بابا من هم رفتم خدا حافظ حاذا جدی رسول الله قد سغانی بهكاس ولی بابا نگران نباشا من لبتش برگشتم اما بابام رسول خدا سیرابم کرد دستش یه کاسه آب منتظر شماست سیدالشهدا تا این صدا رو شنید با اجل آمد نمیدانم وقتی دشمن رو کنار زد علی رو در چه حالی دید دیگه زانو شد هفت قدم روزانو به سمت علی می رفت ساحه هفت مرتبه صدا زد ولدی علی ولدی علی ولدی علی, ولدی علی قتل الله من قتلوک مادره ما من الرحمن و الانتا قرمت الرسول علمای مجلس چجوری ترجمه کنم گفت و گفت دلش آرام نشد سر رو برداشت روی دامنش گذاشت علی چشماشو باز کرد جمله آخر عرض من عزیز دلم روزه رو میخوانن زبان حال نیست مردم این که میخوام بزن عین ای مقتلی علی اکبر چشاشو باز کرد بابا آمدی بابا هر وقت شما میامدی به احترامت بلند میشدم بابا بابا وظیفم نبود جلوی چشم شما. روی زمین دراز بکشم بابا من باید به احترامت بلند می شدم. اما منو ببخش بابا این مقتل ظالمی زربتی بر کمرم زده خونای کمرم خورد شده نمیتونم به پاد بلند شم بابا این جای بود که دیدن خم شد فنکم به روی صورت بزر افتاد وزا و اولا خده カラ drúja, bruúja sura